سیر اثر صادق چوبک با صدای علی دنیوی ساروی تهیه کننده دامون آذری کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری مؤسسه انتشارات نگا فصل اول هوای یابکی بندر همچون اسفنج آبستنی، حرم نمناک و گرما را چکه چکه از تو هوای سوزان ور میچید و دوزخ شعلهور خورشید تو آسمان غرب یله شده بود و گردی از نم بر چهره داشت جاده سنگی کشیده و آفتاب تو مغز سر خورده و سفید و مارپیچ از بوشهر به بهمنی دراز رو زمین خوابیده بود جاده خالی بود سبک بود داغ و خاموش بود سفیدی آفتاب بیابان با سایه یک پرنده سیاه نمی شد کنار مهنا گرد گرفته و سوخته و خاموش با برگهای ریز و تیغهای خنجریش برزخ و خشمگین کنار جاده نشسته بود همه می دانستند که این درخت نظر کرده است و هر کس از پهلویان می چه روز و چه شب بسم اللهی زیر لب می گفت و آهسته رد می شود. این کنار خانه اجنب و پریان بود و خیلی از مردم بوشهر قسم می خوردند که عروسی و عذای پریان را در میان شاخه های آن به چشم دیدند. سایه پهن تبدار کنار محمد را به سوی خود کشید و نیزه های سوزنده خورشید را از فرق سر او دور کرد. پیراهنش به تنش چسبیده بود و زیر ململ نازکی که به تن داشت موهای زبر پر پشت سیاهش تو عرق تنش شناور بود. تو سایه کنار که رسید ایستاد و به نیزه های موین خورشید که از خلال شاخ و برگ ها تو چشمش فرو میرفت نگاهی کرد و بعد کنده کلوفت پرگری آن را ورانداز کرد و گرفت نشست بیخ کندش و به آن تکیه زد یک برگ تکان نمیخورد. خورد سایه خفه سنگین کنار رو دلش فشار میآورد. بیخ ریشه موهای سرش میسوخت و مغز استخانش میجوشید کلاهش را که از برگ خرما بافته شده بود و لبه نداشت از سرش برداشت و گذاشت رو زمین سرش را خاراند و ماساهای نرم که لای موهاش بود زیر ناخنهایش نشست نگاهش تو شاخ و برگ کنار کند و میکرد. کرد میخواست ببیند آیا برگی تکان میخورد یا نه هوا داغ و سوخته بود شعاع خورشید از پشت روبنده نم مانند شعل جوش اکسیژن تو نینی چشمانش مینشست دلش میخواست شمال بوزد و باد خونکی به دلش بخورد حرم سوزان خورشید و ذرات غلیز نم تو هوا تو هم قوته میخوردند و میجوشیدند و او دلش میخواست چه نم تو هواست دود شود و به هوا رود پیراهن رو تنش سنگینی می کرد. آن را کند پوست برشته تنش از زیر موهای زبر پر پشتش نمایان شد پوسته تنش رنگ چرم قهوهی سوخته بود تکه چرمی که سالها تو صحرا زیر آفتاب و باران افتاده و دیگر چرم نیست و سفال است هیچ کس سر در نمی آورد که این آدم چرا اینقدر پشمالوست تنش مثل خرس بود پشمالود بود و بوی عرق هیچ وقت از تنش در نمی رفت را توی مشتهای گندش فشرد شوری عرق روی خاک ریخت خاک تشنه لب ورچید و عرقها را بلعید آن وقت پا شد پیراهنش را تکانی داد و بردش و آن طرف سایه کنار آفتابش کرد و برگشت و باز سر جایش زیر کنار نشست یک شلوار چلوار که تا موچ پاش بود با لیفه زمخت برجسته به تنش ماد پاهاش برهنه بود کونه پاش زیر کوره گم شده بود اندامی گنده داشت مثل غول بود هیچ کس تو جاده نبود تنهای تنها بود و گنده بود و سیاه سوخته بود و داغ بود و تشنه بود و برزخ بود زانوهایش را تو بغل گرفت و به مرچه سواری درشتی که می کشید سوسک نیمه جانی را به دنبال خود بکشد خیره ماند گرما کلافش کرده بود به هیچ چیز فکر نمی کرد فکرش خابیده بود سوسک گنده و سیاه و براغ بود. قد یک خورما بود. مورچه سواری به جان کندن آن را دنبال خود می کشید. هر دم یک جای آن را می چسبید و ول می کرد و باز می سوسک هنوز رمقی داشت و شاخکهایش تکان می و مرچه شاخکهایش را گاز می گرفت و سوسک پاهایش می پرید و تنش تکان نمی خورد. مورچه هر جایی تن او به دندانش می رسید، آن را گاز می زد و می کشید. مرچه حریص و شتاب زده و گرسنه بود. یک مرچه سواری دیگر دوان و پرشتاب از راه رسید و هولکی سوسک را گاز زد و طرف دیگر کشید. هر دو مورچه به هم پریدند و سوسک بی حال رو زمین خشکش زده بود و محمد به آن نگاه می کرد و پوست تنش میسوخت و نمیدانست چه کار کند. باز ها به لاشه غشت کرده سوسک برگشتند و آن را گاز زدند و رو خاک کشیدندش. دوباره با هم جنگشان شد و سخت به هم افتادند و پیچ و تاب خوردند و بعد یکی از آنها راست ایستاد و تندی افتاد و آن مورچه دیگر چرخ تندی زد و رفت سراغ سوسک. آن مورچه‌ای که افتاده بود رو زمین تو خودش می‌پیچید و دور خودش حلقه زده بود و با دندانش ته خودش را گاز می‌گرفت و تنش که براغ بود خاکی شده بود و نمی‌توانست پا شود و آن مورچه دیگر سوسک را رو زمین می‌کشید و میبرد. باز هم مورچه‌های دیگر این طرف و آن طرف در تکاپو بودن. هلکی به هم می رسیدند و شاخک هاشان تو شاخک هم می رفت و سلام و احوال پرسی می کردند یا به هم بد و بیراه می گفتند و تندی رد می شدند. محمد نگاه می کرد و دلش می خواست از آنجا شود برود دنبال کارش اما گرما او را پای درخت خوشگانده بود همیشه این هفت هشت کیلومتر میان دبواس و بوشهر را پیاده می رفت و میآمد. صبح از دوواز که خانهاش آنجا بود پیاده راه میافتاد و میرفت بوشهر سر دکانش. دکان جوفروشی داشت. بعد شب بر میگشت خانه. صبح ها که میرفت بوشهر هوا خنک بود و شبها هم که برمیگشت باز هوا خنک بود و این در تابستان بود که وقتی به بوشهر می رسید تازه خورشید سرش را از پشت کوهای دور دست فیلی رنگ خاور بیرون میکشید و زمین را میگداخت و سبزه ها را می سوزند و پوست تنها را سفال می کرد و امروز غیر از روزهای دیگر بود که بی وقت به دباس میرفت. همین یک ساعت پیش بود که یکی از بچه های دبواس برایش خبر آورده بود که گاو سکینه یاقی شده و در گاور بند را پاره کرده و فرار کرده رفته تو نقلستان کنار دریا و هیچ کس نمی نزدیکش برود و اگر نگیرندش می ترکد سکینه زن بیوهی بود که مرد نداشت و شوهرش پارسال مرده بود چاه آبی داشت که ورش را هندوانه و خربوزه و خیار و سبزی می کاشت و خودش زمین را با همین یک دان گاو شخ میزد و کشت میکرد و آن را آبیاری می کرد. حالا با این ورزای یاغی دستش بسته شده بود و هیچ کس نتوانسته بود او را بگیرد و همه از او میترسیدند و چشم و امید همه به محمد بود که برود و گاو را بگیرد. حالا هیچ به فکر گاو نبود دلش میخواست باد شمال خونکی رو پوست تنش سر بخورد و خونکش بشود بعد به یاد جوانی که رفته بود گاو سکینه را بگیرد و گاو شاخش زده بود افتاد همون کسی که خبر آورده بود گاو یاغی شده به محمد گفته بود که پنج نفر از بچای ده ورزا را دوره کرده بودند که بگیرندش و یکیشان گرفتار ورزا شده بود و بعد گاو را هی کرده بودند و پسرک تو خون خودش غلط میخورد که بردندش تو کپرش و دوادرمانش کردند و پدر و مادرش بالای سرش گریه میکردند و تو سرشان میزدند مادرش قش کرده بود و محمد آن جوان را میشناخت که اسمش لوهراسپ بود حالا محمد دکانش را تخته کرده بود و میرفت رفت دواس که گاو را بگیرد او ورزای سکینه را خوب میشناخت که توده تا نداشت از آن گاوهای نکره بحرینی بود که شوهر سکینه پارسال دو سه ماه پیش از مردنش آن را از بحرین خریده بود و با خودش آورده بود و قد یک گاو میش بود گنده بود و سفید با های راست و مل گنده برآمده زانوهایش را تو بغل گرفته بود گردن کلفت کوتاهش میان زانوهایش افتاده بود و روخاک پف کرده ی پر پشکل خیره شده بود و به لاشه از حال رفته سوسک نگاه می کرد اگه بنابه هر روز این وقت روز از این راه بیام مثل کنجه گوشت زیر آفتاب جزغاله میشم. ببینی هیچ کس تو جاده رد نمیشه. گفتم اگه امروز نگیرمش دیگه کسی حریفش نمیشه. شایدم به ترکیه یا بزنه به دریا خفه بشه کلی قیمتشه، اما لو لحراس پیه اهل اینجور کارا نبود که بره به جنگی ورزای یاقی، چه خوبیه، ننشمی یه بچه رو داره، اما هنوز دهنش برای اینجور کارا بوی شیر میده، خوبی که بازم زهلش رو داشته، چشمانش رو پیراهنش افتاد که آن را آفتاب کرده بود و اول که آن را انداخته بودش رو زمین پیراهن رو ماسا خوابیده بود و حالا که خشک شده بود، مثل ورق کاغذ ای رو زمین پف کرده بود و پا شده بود نشسته بود و ورقهایش تو هوا رفته بود و چروک خورده بود از پیراهنش بدش می آمد و جدایی و ناجنسی دردناکی میان آن و خودش حس کرد فکر کرد پا شود راه بیفتد اما گرما زوب کننده و گدازنده بود و خیال میکرد مغز سرش لغ شده و دارد از لوله های دماغش بیرون میریزد و مغز نرم و لزج گوزفند را دیده بود و حالا خیال میکرد مغز خودش هم مثل مال گوسفند است بی اراده به پشت رو زمین دراز کشید و سرش را به کنده کنار تکیه داد و چشمانش را بست نور خوشی تو سرش میزد و تو سرش سیاهی دوید ذرات زرد رقصانی تو زمینه سیاهی سرش شنا میکرد و موج میخورد ناگهان چشمانش را باز کرد تمام تنش تو سایه بود و رو خاک گرم افتاده بود پوست تنش رو خاک بود تو شاخههای درخت چندتا گنجش کس کرده و از حال رفته بودند و بالهاشان شل و سست کنارشان آویخته بود به گنجشکی که رو شاخه پایین نزدیک او نشسته بود نگاه کرد دید چشمانش نیمه باز است و غوز کرده و له لح می زند و گوشه زرد منقارش از هم وا رفته آن گنجشک خیلی نزدیکش بود و نفس نفس زدنش را حس می کرد زبون بسته تش نشه، آب که نیست باید برن سر چای آب شاید یه چک آب گیرشون بیاد اما حالا هم که کسی سر چاه نیز آب بکشه سر چاه خشک خشک بعد دید خودش هم خیلی تشنه است دهنش و زبانش مثل سنگ پا شده بود و دهنش بوی تب میداد و دهنش تف نداشت تازه از ماه رمزون پنج روز میگذره و 6 روز دیگه مانده هر روز که این وقت ابووشهر بودم تو دکون میخوابیدم سایه بود و اینجور تشنم نمیشد بفتار خیلی منده باید پنش ساعت داشته باشیم روزای شونزه افده ساعته ای تا به سون خیلی سخت آدم روزه بگیره اما خدا عجر میده زبانش و سقش مثل دوتا آجر آب ندیده رو هم خابیده بود و تو سرش صدا میکرد گنجشت به خودش تکانی داد و پرهاش را لرزاند و نگاه ترس خورده لرزانش را تو شاخه درخت دواند و ناگهان مثل جرقه زغال پرید و رفت تو هوای سوزان آفتاب گرفته و برک های لرزید. همچنان که خوابیده بود از پایین به دخیل و لطه های رنگ که به شاخه درخت بسته بودند نگاهی کرد. کنده سوخته مانند درخت و تای شهم اشک ریخته تو سری خورده آن تو سرش جان گرفت. آنجا را خیلی دیده بود و تو شم روشن کرده بود همین چند سال پیش بود که درخت خود به خود آتش گرفت بعد خودشم کور شد از ما بهترون خودشون آتشش زده بودن بعد دوباره سبس شد از اولش هم بهتر میگن جنای ظلم اومده بودن خواستگاری یکی از ما کنار مهنا و اینا دخترشون رو به اونا نداده بودن و داده بودنش به پسر جنای جبری اون وقت شب عروسی جنایی ظلم آباد اومده بودن و درخت را آتش زده بودن زارغلوم خودش قسم میخورد که به چشم خودش شب عروسیشون را دیده میگفت نسبشو از بوشه میرفتم بهمنی دیدم مثل اینکه کنار چراغونی شده بود روار شاخش از ما بهترونهای کوچک به قدیه بندنگوش بودن که هر کدومشون یه شعم روشن تو دستشون بود و عروس تو تخت روون که قدیه قوطی که بود گذاشته بودن و میبردنش خونه دوماد و. خودش صدای ساز و آواز شنیده بود که صدای باد و تیفونه تو دریا میداد و زارغلوم تا چند روز گوشش کر شده بود و هرکی باش حرف میزد زد نمی شنیده. های برزنگی هم با یه دبوس آهنی زیر درخت واساده بود که تا زارغلوم خاصه بود رد بشه حیزده بود که برگرد. اون وقت زارغلوم راهش را کج میکنه از راه دیگه می رو خونشون. می گفت از ما بهترون مثل میگ رو درخت را میرفتن و تو دستشون شام بود و درخت رو آین بسته بودن پاشو دیست و تو سکوی سوخته شام آجین شده میان کنده سرک کشید تهشم های سوت و کور اشکالود و گرد گرفته و تکههای های نقل و نبات کف سکو ریخته بود و مورچههای های قد و نیم قد دورور را گرفته بودند و آنها را می پلیدند شایدم خود این مرچه از ما بهترون باشن کسی چه می دونه؟ باز برگشت و چشمانش را پی مورچه سواری و سودکی که قبلا دیده بود دواند مدتی بود با آنها نگاه نکرده بود زود پیدایشان کرد جایشان عوض شده بود آنجا که قبلا آنها را دیده بود نبودند یک مورچه سواری داشت سوسک را به جان کندن رو زمین می‌کشید و با خودش می برد. آن مورچه دیگر معلوم نبود چه به سرش آمده بود آنجا نبودش گمش کرده بود اینم هم از همون از ما بهترونه بیام کمکش کنم شاید دلشون رحم بیاد پولام پس بگیرم بهم بدن بعد خم شد و لاشه سوسک را با احتیاط گرفت و تو هوا بلندش کرد مرچه سواری هم که با چسب چسبیده بود ازش آویزان بود و تو هوا دست و پا میزد. سوسک را با احتیاطی که مرچه سواری ازش نیفتد آورد گذاشت پهلوی تحشمها و شیرینیها. ناگهان مرچه سواری و مرچه دیگر که تو سکو بودن در رفتند و نعش سوسک آنجا خوش گشت ای از ما بهترون ها. اگه کاری کنین که اینایی که پولای من را خوردن این پولام را به پس بدن خودم یه دسته شهم میارم نظر کنار میکنم شما که میدونین این پولا را من با چه خونه دلی جم کرده بودم چارپنگ دوز گیر هرچه داشتم بالا کشیدن من آدم بدبختیم یوم جون کندم تا این چهار تا قرون را جم کردم خودم یه دسته شهم میارم نظر میکنم اینا پولای زن و بچه بود مایه دستم بود ای از ما بهترون به من کمک کنین یه دسته شم میارم نظرتون میکنم یک فرد کروکی وزی کرد و مثل زنبور سیاهی تو جاده غیبش زد درخت و محمد و جاده تو گرد و غبار فرو رفتند نگاهش به پیراهنش افتاد و دید مثل یک ورق کاغذ روزنامه دنبال اتومبیل تو جاده میدود پا گذاشت به دو دنبال پیراهنش و آن را میان زمین و آسمان گرفت کجا داشتی در میرفتی؟ مگه شیطون رفته تو غالبت؟ هنوز شور اولته، حالا حالا من خیلی بادکار دارم همچنان که راه میرفت پیراهن را به تن کرد کنار ازش دور میشد و شاقههایش به طرف او پیچ میخورد یک بار هم بر نگشت پشت سرش را نگاه کند کنار و پریان توش از یادش رفته بود و یادش رفته بود که یک دسته شم نظر کنار کرده و گرمش بود و تنش میسوخت. سایش لنگ دراز و شتابان بغلش شلنگ تخته میانداخت و راه میرفت و آفتاب و زمین را سیاه و سفید میکرد و به شکلک در میآورد. پاهای گنده برهنهش تو ماسه نرم و سوزان فرو میرفت و آن را میخراشید. باز پیراهن به تنش چسبید، پشتش و زیر بغلش و سینهش تیره شد شاخای درختان سپستان و گلبریشم و کنار و گز و بابل و نخل و لیمو از تو باغهای اطراف جاده به بیرون سرک می کشیدند و محمد سایه سنگین نمو آنها را که پشت دیوار باغها رو هم خابیده بودند، درون خود حس می کرد